سریح قرآن کریم است و ما حاضل حیاطات دنیا الا لحون و لهه لح چیه کارایی رو که انسان فعلا ازش خوشش میاد آینده نگری روش نمیکنه به لغت مراجع کنیم ریشه یابیر کنیم انشالله دقیق بریم جلو لح زبان عربیه مییم تو کتابای لغت کاری که الان آدم خوشش میاد. فعلا خیلی بر شیرینه رو ارضا ارزا میکنه خاستهاشو برمیاره ولی وقتی دراز مدت بهش توجه میکنه واو چه مسائلی هم در کنارش میاد که اون شعره چرا آقل کند کاری که بازارت پشیمانی اینجا جاشه که مطرح بشه مثلا فرض بفرمایید از باب مثال من الان خوشم میاد این فرشم را عوض کنم یک فرش زیبای چنین چنان تو چشم و رو ها رو جل بکنه چنین چنان تحیید خوشم میاد بر مبنای تمایلاتم بر مبنای اون خواسته های شخصی یک انسان عادیم نه بر مبنای تعالی اخرویم بر مبنای زواهر خب الان خوشم میاد آینده نگری نمی کنم میتونم دیر بار غرز نمیدم مشکلات آبرویی بعد بد برام پیش نمیاد اینا، این لحظه الان میرم یه کارو انجام میدم بعد توش میمونم و گاهی به خلاف شرع میانجامه حالا من در عده غیر خلاف شرعش بودم به خلاف شرع لعب چیه؟ بازیه بینگن لعب کارای کودکانه مثلا یه جمع بچه ها رو در نظر بگیرید الان یا حتی بازیگری برای بزرگات تاعتر چرا میگن بازیگری؟ مثلا یه نمایشی رو الان تو این فیلم تو این تاعتر میخواد نشون بده یکی حاکمه یکی محکومه یکی سلطانه یکی وزیره در اون لحظه بازیگری یه امر جدی به نظر میاد دیگه خیلی هم باید جدی بازی کنن اما وقتی تموم شد پردر رو کشیدن میگن چی بود؟ همش بازی بود تموم شد میگه دنیا اگه در حد این دنیا باشد همش بازیه اگه در حد این دنیا باشد